بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهی انتقنی بالهدا و الهمه التقبه کارهای اسلام سرتاپا راز و رمز و حکمت ما یک کلمه میگیم بلال اذان گفت چقدر راست اینه خب مکه دیگه نبود بدی پیغمبر اذان را اول کسی که اذان یاد گرفته از آن گفت بلال بود چرا؟ میخواست به بردا احترام بذاره بلال برده بود شخصیات به برده دو میخواست به سیاه احترام اهدرام بذاره سه میخواست بگه که لیاقت‌های های باطنی اصله جزئیاتی که در ظاهر هست بهش گیر ندید چون بلال در ظاهر نمیتونست شین بگه عوض اش هدوالله اله الا الله گفت از هدوالله اله الا الله گفتن این زبانش شین نمتونه بگه فرمود بلال اقدر کمال داره که حالا سین و شینش مهم نیست یعنی, یعنی در ازدواج یه دختری کمال داره حالا یکی از نندوناش پشتره دم متول کن دیگه حالا گیر نده یه پسری که هزار تا کمال داره منطقه ها یه خورده مثلا یا مادر بزرگش مثلا به فلان لحجه هرش مزنه گیر ندید بس. خب بلال روز فتح مکه به دستور پیغمبر رفت و بالای کعب ازان گفت از ازان بلال بالای کعبی چه؟ یعنی مهمتنی ساختمون به جوری آزادی در اسلام که یک برده میتونه بره بالای پشت بامه مهمترین ساختمون بلال هم خزیندار بیتلمال بود هم در زنگ بعد در زنگ احود، در زنگ خندق شرکت کردی یه انقلابی بود بلال به قدری صلابت و محکم بود تو ایمانش سلابت داشت که شکنجه هایی که مشرکین و کفار مکه دادن او رو از راه بر نگردند بعد از پیغمبر بلال بر خلیفه اول اذان نگفت خلیفه دوم امر گفت بلال تو برده بودی ابوبک خلید تو رو آزاد کرد چرا برش ازان نمیگی؟ او بره خدا آزاد کرده که از خدا موزش بگیره اگرم برای خدا نبوده من حاضرم برده ابوبکر بشم اما مؤذن نمیشم من بعد برای پیغمبر اذان میگم برای غیر پیغمبر اذان نمیگم <تصفيق> یه روز فاطمه زهرا دلتنگ اذان بلال شد گفتن فاطمه دلتنگ اذان شده یه اذان بگو یه اذان بگو وسط اذان پیغمبر یاده احتمال زهرا یاد دوران پیغمبر افتاد و منقلب شد گفتن بس دیگه آن نگو حال زهرا به هم ریخته به هر حال اگر دانشجویان ما هر جا هستن تو اروپا آمریکا اذان میگن مردم به میفتن که چیه قصه اینا چی میگن مردم وادار به تحقیق میکنن. به هر حال این سیاستمدار انگلیسی در پارلمان گفته بود که تا اذان رو با آمها گفته میشه و تا قرآن در دست است و تا کعبه هست سیاست های ما در بین کشور اسلامی نمیتونه محکم بشه این ازان و این کعبه و این قرآن مثل نخایی که تا این نخا تو اسکناس باشه اسکناس ارزش داره و صدای ازان شیطان را عصبانی میکنه سلام و سلوات خدا بر نواب به یارانش گفته بود سر ظهر مغرب صبح هر کجا هستید ازان بگید ازان لرزه بر اندام تا قطبون ما در انقلاب خودمون با اذان شاه بیرون کردیم ازان را ساده نگیرید ازان این اذان بلال یعنی سیاه پوس فرق نمیکنه با سفید پوس یعنی برده فرق نمیکنه با آزاد یعنی شین گفتن و سین گفتن لحجه های تغییر لحجه ها در کبالات انسان فرق بکنه یعنی آزادی برده میتونه بر پشت بام که نه فقط شعار اذان بگه تو جنگ اهد و خندق شرکت کردن نفقت رزمنده بودن امین بودن خیز نظاره به شدن بلال خیلی عزیز بود سلبات این فرسیم سباب شهدیه روح بلال میکنیم که کی و بلال خورد ما هم به اللهم صل علی محمد و آل محمد